اللهم صل على الطاهرين على اعدائهم اشفع لنا المشغلين حمل مطلق و مقید بود از شد که این مثل سابقه طویلی داره سابقه طولانی داره در دنیای معارف دینی ما و مخصوصا اون که مربوط به قرآن میشه حتی نسبت به جوانب فقائلی هم همینطور بوده. حالا این آیش امروز روز میخونیم و اختلافی بوده بین آقایون که آیا به مجرد ارتداد عمل حفظ میشه و از بینیره یا با ارتداد و به شرط وفات از الکفر مثلا ابو حنیفه می گفته به شرط به مجرد ارتداد حرفت میشه شه و من یک به ایمان فقط حفظ عمله این توسط که به این اون که میگفتن نه باید فوتم موتم پیش باشه و من یک من کم اندینی فیامات و کافر اولا فی و اولاکه از اعمال هم دنیا و آخره گفتن چون این آیه دوم تقیید داره به موت پس به موجب ارتدار عمل حفت نناشه ارتدار و موت در حال کفر یعنی در حال کفر موت این کسی که این موجب به عمل میشه ببینید مسئله مسئله عقایدی سعی کردن همون بحث مطلب و مقاید رو پیش بکشن در خود همین دو تا آیه اضافه بر این نقطه ای کردن از شد که هم به مطلق و مقاید کرده هست باز قدهشون آمدن گفتن که خیر، این دوتا آیه از مطلق و مقاید نیست سنخ بحث ایشون هم توضیح نداده، تحلیل نکرده ما تحلیلش در دو جلسه گذاشته اعلام کرد بیان کردیم اصولا هر رفت بحث موردی بود این از بحث اصولی خارج. هر بحث کلی بود این داخل در بحث اصولی است درمون و من یرتدید من کم اندینی فیو و کافر فیو کافر فا اولای که حبتت اعمالو حالا اینشالله عرض خواهد شد اولا اینجا داره که حبتت اعمال هم فه دنیا و آخره. اولا زیادی داره اونجا داره من یک فر به ایمان فقط حبتت اعمالو فقط عملش حفظ میشه اینجا فه دنیا و آخره. وقتی یک قید زیادی آمد بعدم این دردش خلود در نار داره حدثت اعمال همون دنیا آخر همون به ناره از مزمون آیه, آیه شماره 23 سوره برانه قرآن زارم تو جیبم نباشه که بخونم از خود برانه پس بنابراین این آمدن گفتن یعنی مصباحو کافر این تأثیر برده در خلود اما اگر در رضی شد این تأثیر داره در هفته همه می میکنید یعنی حتی در همین آیه مبارکه یک برخورد برخورد موردی یک برخورد برخورد اصولی. حتی تو همین آیه که تو باب عقایه من این دو سه روزه زیاد این دو روزه شرح این نکتا رو شم باره عرض کردم خوب دقت بکنید بندی وقتا برخورد برخورد موردی نباید باشه حالا برگردیم به این ویودی که ایشان برده ذکر کردش حلس کردن در کتاب احسان نه چند تا شرط آوردن این شرط خودش محل کلامه با که آوردن برای این که اینا شروط هم به بر برمغیده شرط ثبامش هم که ما دوم ما بود ثبامش رو خوندیم که البته مثل لا توتق مکاتبن لا توتق مکاتبن باز اینجا اگر آن در صفحه 19 این جلد سه بهر این چابی که من دارم باز هم مناقشه موردی کرده مضافن به اینکه که اصولا نکره در سیاه نف و نه این آمنه مطلق نیست بحث ما تو مطلق هستیم این دو تا مثال جزو مطلق نمراید نیست از به اینکه که یک شرط چهارو کرده املا یکون که جانوی اباهه هر حرمه مباح نباشه. الان ما ان شاء الله اگه می‌کنیم که مستحبم بود حکم شمیه. بازم ایشون گفته که یه نظری اون بازم قبول نکرد. اما درسته در باب اباحه مثلا اگر آب برای شما مباحه، آب سرد برای شما حلاله. اینجا همه مطلق برنقیه نمیشه آب هم حلال، آب سرد هم هر حرفش بد نیستش موند. شرطه تنگ اما اینکه آیا ما در مثال های شرعی اینو داشته باشیم، ببین این تعبیر اون بحث دیگه شرط پنجم ایشون اوورده که شرط چاران ما شد این که جمع بین اینها ممکن نباشه اگر جمع ممکن باشه این جمع بکنی نوبت به تغییر دیم و وقتی مثالی ایشان زده دی. من بخواب این را, را متعرض بشم نه چنده فایده درستی داره نه یه روایت است. من منباه عبدن و او مال فمالهود البایه الا انیشتر از المقطع از ابن عمر نباشه و در روایت دیگه از من ابتاع عبدن فمال حول لدی با این یک حدیث از جانب فروشنده فرض کرده من با عبدن که فروشنده باشه من ابتاع عبدن یک حدیث هم همون حدیث از الله نوامره از جانب خریدار ابتاعه خرید از جانب خریدار فرض آمده اومده گوفته روایت اول اینطور روایتیه این کارو جمع بکنه هم مطلبر معین و این نیازی نیست بخواد اینا اولا مثل این عواذ چون از طریق ما ثابت نیست نیازی به این شهر نداره بعدم این نکته رو خوب در نظر بگیریم هم مطلبر معین بعد از حجیت متن روایته اگر بنا شد که روایت واجده به دو طریق دو متن داره که با هم دیگه نتیجه اش فراهم هم نیست شرط پنجم ایشون ذکر کرده ایشون در این شرط پنجم این است که اگر معید ما خودش خیلی زیادی داشته باشه در ثمر اینجا هم جای حمله متبر معید نیست مثلا اگر بگه انقتلت نفسن فاتر اگر انقتلت نفسن مؤمنه فاتر اگر رغبه اینجا مؤمنه اینجوری هم چون اون رغبه مؤمنه قیل زیادی داشت اگر یک انسان مؤمن رو کشتی یک برده مؤمن آزاز اما اگر یک انسان کشتی برده آزاز جه هم بر برمقید نیست که الان هم این مورد رو در همون آیه شرحش دادیم شرح ششومی که ایشون گذاشته انلا یه قوم دلیل یه نامونه تقیی به تعبیر خودشون مثلا و الذین یوسف از خون من و یادرون از واجن اگر کسی فوت کرد و همسری داشت این میراثش اینطور خواهد شد خلب یا قید به دخول در اینجا واقع موت تغییر به دخول نشده و اما در عده طلاق تغییر شده و قید بیهی فی عده طلاق به قولی ایزانه تحتمون مؤمنات و مطلق تو من قبل ان سوون نه فماللك عليهنده من عدده اینا عدده ندارم. او ولم یحمد و المطق على المخیت حمل مطلق بر معیت نکردن نگفتند در اونجا هم در عد وفات ف باز مثلا دوخول باشه در عد طلاق گفتند دخول اما در عددا وفات فارت نگفتند دخول چرا؟ به خاطر اینکه تغییر مطلق یا تخصیص ها آن این نما یکون به قیاسن و مرجهن بله این یک نقطهی باد باشه که جهب بکنیم اما در اینجا اون نقطه نیست اون نقطه در اینجا منتفیست یعنی یک نقطه عقلی یا یک نقطه عرفی باید باشه که ما حمله مطلق بر هست چرا لندن متوفرانها زوجها احکام و زوجیه باقی از اون که حقه ها در واقع زنی که شوهرش موزه احکام زوجیل هست به دلیل همه ها تغسل رو مشهور بین این های شیعه و سمنی زن میتونه شوهرش رو بشوه ولو من همه اصطاد اشکال داشته و ترس و من ها اتفاقا حرس هم میبره ولو کانتی حکم المطلقات البواین اگر زده مطلقات باین بود لم ترس فلا ما حرف فل فرمایی اختز عدم الهاقی دل هست امیتونه از به قیاس او تخصیص یعنی, یعنی اینجا باز بگیم قیاس اختضام می کنه که من در جلسه گذشته که گذاشته توضیحش رو عرض کردم که چطور مثلا قیاس در وقت موقع نقاییت داخل شده ارز کنم که این شرط پیگه بوده شرط درست است، اما نه از این راهی که ایشون رفته حسولا ما ارز کردیم احکام شرعی و احکام قانونی مطلقه هر کدام تابع عنوان خودشون هم موضوع خودشون رفت داره که احده ما را همزور دیگری بکنی نکته وجود نداره یک موردش در وفاته که اگر شوهر فوت کرد زن ارث میبره تو این عزله نه آمده که شوهر بعد دخول بشکرده باشه دا این عزله بزن تو اده وفات آمده مثلا تو عده وفات آمده که اگر اده طلاق شوهر زن رو طلاق داد و دو نکرده این عده نداره پس این موردش طلاق است و موردش عده هست حکم عده این موردش موته چه رفتی بوده حالا ایشون چون قائل به قیاسه میگه قیاس اینجا اختیزا نمیکنه کنه ما اصلا میگیم رفتی نداره بست قیاس نیست رفتی بودن این موضوع موضوع موت، اون موضوع موضوع طلاقه دو تا موضوع مستقلن رفتی هم نداره بلکه بالاتر از این در آیه داره که اگر تلاب داد و دخول نکرده باشه نصف مه رو بده حالا دخول نکرده و مه طبق تمام مه رو بده حالای روایت ما متعارضه انصابا تا بدی هم چون از این رو توی و از بد میده ما باشه مخصود تمام مه بده مخصود قادمی اینه دلیلی نده که مه بر هم در تلاب بازن تو نصف میشه و اون هم تعبوده یعنی به عبارت اخراغ این مفهومش این نیست که به مجرد عقل مالک نست رو محوم میشه با دخول مالک نست دیگه میشه نه این نیست این چیزی نیست بگیم به مجرد عقل از اگر ما باشیم و مختزای قبائل دو مجرد عقل مالک تمام محوم میشه شخص داره این یعنی چی تام که همین وایم سن معارض رو صدا نمی‌زنه ما همین می‌خوام تامشین کنم ما باهاش نمی‌تونیم چون قابل مقابله نیستش نمی‌تونم اصلا این معارض نشه چون اصلا قرارداد رو مناظرهش قرارداد بده اون که نقشی من تزوج رو انجام در وای میلیون تماشایی به مجرد این كلام هي زوجتون واه زوجتون میگونم بلکه این طرف معارض نیست پس اگر دلیل آمد که قبل از دخول تلاف دادی نصف مرد این تأبد خواسته این روی خارجه نیست که روی قاعده باید مالک تمام. مرد ولذا اگر پول دیگری در متن عرب به عنوان شرط قرار بگیره و محن نباشه اون پول نصفه که نمیشه شد که من اون پولی که زن خصوص زن در متن عرب قرار میده که از شوهر بگیره بگیر میگرد محن اما اگر در مطنعه قرار یک پول از یک نفر میگیره، یک نفر میگه بیا تو ازواج بخون منم به تو این قدر میدم همسر این بشو این قدر بخوندم بعد میگه در وقت چکه من مهرمن این قدر و اون آقا گفته این پول به من بده حالا اون آقا پول داد حالا دا بخوری، مالک همه پول میشه نسبت به من فقط تعبد آمده شبه. یا اگر زن با به عهده گرفت به بده اون در وقت چکه من به تو یک میدم. زند به مرز بده بعد قبل از دخول طلاق استاد باید تنفیل بده تنصیف میشه، دلیل بر تنصیف نداره. مقتضای اصالات لزوم در عقود این از که وقتی التزام داد اون التزام اوفو به لغود موجود به شراحه التزام داده که ببینید بس در سر کلمه زبوش که دخول که توش نیز همتر بودن علقه زوجیه میگه من ایجاد الوغه زوجیت میکنم در مقابل یک میلیون جایی که میگیرم خب چه بق قاعده زوجیت شراکتیه میلیون شراکتیه برای حصول زوجیت بسته بود می زوجیت, زوجیت, در زوجیت, در زوجیت اولا خود بند قبول نکنم طرف در مقابلش تمکین باشه این شبهه داشتون بحث قرضیه از همین که این بحث خیلی هم عجیب از عجایب و افسه چون در اهل سنت هم روایت نداره اما حکم اجماعی در ما هم روایت نداره و حکم قابل قبول شده شما چه اشکالی دارید چیز عجیبی بله از اهل سنت مثل ابن حزم اشکال میکنه در شیعه مثل محمود عطا صالحی داره اشکال میکنه که در روایت نیامده مسئله نشر به نشر به تمکین ما هم شبهه داریم شبهه داریم که نفقه دارمدار تمکین نباشه تمکین هم نکنه نفقه رو باز بده الان این که به ماکامون بحث دیگه نفقه کنال ما باشیم مختصه عرض عزیز شما تصور بفرموی تا گفت زدوشتالی ایجاد ارقه زوجیت میکنم از طرف خودم در مقابل یک میلیون تون که من بدی اونم قبول میکنم به مجردی که این کلام رو گلوه قبول کرد هم ارقه زوجیت حاصل میشه هم یک میلیون تون تو زمه رو میدیره چه زندان به خاطر پول درسته این سنخان و اوصره فنآور ملا یکی از کسانی که الان نظام شده، البته یه هوادۀ برای پول نباسه زندان کنه. پول زندان نداری. حالا شده دیگه فعلاً اون اینطوریه و الا پول زندان امکان ذو اوصره و نظر از ملا میثی اینجوری زندان می‌شه. زندانم می‌دونم. بله، شده دیگه الان که یک مریض بیاد دیو میو همین خرج اولو چپا و مخا اینجور چیزاست. یه مقدار زیادی زندانی ها مسائل مسئله پولیه فرمودی پس اگر ما باشیم خوب و مختزای قاعده به مجرد ایجاد علقه زوجیت بین طرف به ذمه زوج میاد یک میلیون بده طبق قاعده اینه پس اگر طلاق هم داد طبق قاعده بده. چرا؟ چون زوجیت پیدا شد زنوشتو که نفسی یعنی ایجاد الغی زوجیت الغی زوجیت که شد طول فسخ بده حالا میگه طلاق بده قبل دخول محال نذاره اون مشکل نداره پس این یک نوع تعبده خاصی است که در طلاق قبل از دخول نصف مهر نه اینکه خودش زوجیت نشه نه میاره دخول نشه دیگه نه این دخول خودش مهر کامل میاره و لودخ علی شو به این کامل باز بده اصلا دخول بنفسه یکی از اسباب مهر ارا اول اگر اذا در الرجل فقط مهر و بالوصل و بر این که خودش هست اون که هیچ نه اینکه نصفش به ایجاد الوغه زوجیت نصفش به مسئله دخوله نه خود دخول موجب مهر کامله الغه زوجیت هم موجب مهر کامله و نظام مثلا در باب مطعه اگر متعه که از زن رو فرض پنج 5 ساعته و این 5 ساعت دخولی نشود مدت تمام شد نصف مهر نباز همه مهر واجب بوده این تعبد در خصوص طلاق دقت بکنید، بکنیم نه مطلق جدایی به افتراق زن شوهر در خصوص طلاق اینی که در روی باید که در محطه طلاق نیست اشاره به اینه غیر دیگه اینکه طلاق نید این لوازمی هم که طلاق در شریعت داره در باب محطه بار نمیشه مثلا در باب طلاق باید در حال حیز نباشه اما در محطه مدتش تمام رو و یه حال مدت الزواج و طلاق اون چه نیاور مشکل مدت رو بخشی دانش مدتر هست بخشی و یه های اونم مشکل داره وقتی میگه لا طلاق فل المتعه مراد اینه اگر مدت تموم شد و دخولی هم نشود نسه مهر باز نه تمام مهر باز سرش این نکته ولی و لذا اگر ما باشیم متوجه قاعده در موت هم اگر دخول نکرد و موت حاصل شد مرد شوهر موت با تمام پولو بگیره نه اینکه نه. از این دو سیل به لحاظ قاعده روایات ما معارض شدید این دو طرف حدیث صحیح و دو طرف حدیث اینم حدیث صحیح اونم مساییدنا متکثر اونم متکثر وقتی چون مخالفت با کتابه اخذ به ظاهر کتاب این کتاب رو مرجع قرار بدیم عائشه در موس وقت تمام پول بده هم ارث می‌بره هم عده عدهش ثابته یعنی عده صاحب دخول نیست که خلاف تلا. اینجا حمل مطلق بر مقید رو میمید اون یک عنوانه این یک عنوانه اونجا تأفد آمد که اگر در طلاق قبل از دخول بود عده نداره در باب زوجیت این تأفد نکنم و الناسی نیاسو رو میکن و یک در اون ازواج ها زوج صدق میکنه ولو دخول هم نشده باشه زوج اون است که با او قلقه زوجیت داره تا هم مهر کامل میگیره هم عرض ها. و رو قبلت بخوره با این برای که مای ما کنونی هم مورد که این قول روزه ما نور دادیم مطلب روشن رو شد یک مقداری یک مقداری از بحث های مطلق و مقیدی رو که آیان در اینجا محرم کردن این محتمی بوده بر تصورات اینها در قبول قیاس مثل این مثال که دیروز خوندیم کپاره زهار رو با کپاره قرد جمع کردن به مطلق و مقید آیه تعمال رو با آیه وزو جمع کردن معلوم شد تمام اینها غیر فرمیه پس یک مقدار از این قالب هایی که اینها برای بحث و مطلق و مقید کنن اینا پی نفسه باطله چرا؟ چون این قالب ها مبتنیست بر حجیت قیاس و قیاسم خیاس پی شما باطله اصلاً قیاس حجیت نداره خب تعمل بکنید این طور نیست که تمام این بحث بر مطلق و مقید باشه نکات خارجی هم بوده با طبق نکات خارجی یعنی به عبارت دیگر این بحث مطلق و مقید و حمل مطلق و مقید مثل قضایای به قول معروف منطقه عرضی نیست که صورت بلا ماده باشه اینا ماده معینی دارن این طور نیست که صورت بلا ماده باشه مثلا اگر دو عنوان بودن عنوان زهار بود با عنوان خرج این دوتا حمل مطلق بر معین نمیشه پس یه مقدار از این بحث‌های طولانی که اهل سنت در طول 1400 سال بحث‌های مطلق و مقید بودن اصولاً به نظر ما منتفیه اصلا سالبه به انتفاق موضوعه مثلا چون آیه طلاق عده شرط رو درش این دخول دخول عده نیست در آیه موت شرط دخول نشده پس تغییر دازنیم اینجا بگیم اگر شوهر موت قبل از دخول عده نزده جای هم مطلقه. این موته اون طلاقه اصلا ربتی به هم دیگه نزدنه هیچی نقطه خاصی در بین وجود نداره در اینجا بله نهایتش ممکنه کسی بخواد راجع به سرایانش بده از عده طلاق فرصول به ادهی جدایی باب مطعه مثلا به ادهی طبق قاعده رفتی به ادهی موس نداره محک حساب زهار حسابه طلاق حساب دیگری، زهار یک حسابه قصد حساب دیگریه آیه وضوع یک حسابه آیه کرمان حساب دیگریه پس یه مقدام خوده این قالب‌ها اینا که اینا تالی کردم بریزم به قول خودی شیش تا هفت تا شهر درست کرده یه مقدارش اصولا خارجه مثلا کلا از بحث مطلق و معیار خارجه نه بخاطر این نکته‌ای که گفته این یک بحث که باید در نظر گرفت نکته دوم که در خلال بحثشون این یواشا چون آفریا یا آسیای و نائینی یا تا بخوام فیلمش رو مراجعه کنم یعنی هم نداره این درست درمون نمیاد نکته دوم اینه که قسم خیلی از مواردی که به حضرت زاهر مطلق و مقیدن در حقیقت مطلق و مقید مصطلح نیستن یعنی مشکل پیش آمده مثلا یک قیلی زیادی در این کلام هست نسید و من یکتر من کنم اندینی فیامت کافر لکن داره به حول و حکر فیل عذاب خالدون فی جهنن مثلا خالدون خب این یمتش به خاطر کلوده یکی دیدان من یک قربل ایمان فقط حبات عملو کسی که کفر پیدا بکنه حفظ عمل میشه اما حفظ و قلود در جایی است که برای همون کفر بمیره او چه, چه مطلب ما حیده میخواد؟ او به جای خوده جایی به جای خوده جا. اصلا جای بحث مطلقه مقید در این در جا ولذا ما به جای این که بگیم بحث مطلقه ما حید نخریم باید این موارد رو باید موردی حل و فصل کرد نه رو تا قالب های اینا رو باید موردی بررسی کرد مثل مثال دمن مخصوح هم که سابقا نهارد کردیم اینا رو باید موردی بررسی کرد و اصلا داخل در قالب‌های اصولی نمیشن این مطلب جهرم و اما مطلب سوم آیا ما میتوانیم قالب‌های اصولی در اینجا بدیم انصافا کار مشکلیه انصافا چرا؟ چون متونی که ما الان داریم عنوان متون دینی یک طرفش قرآنه یه طرفش روایات و سننه روایات هم در عهد سنن مشکل ندارشون هم رسول الله پیش شما مشکل دارشون 20-50 سال بعدش بعد امامت درش مطرح میشه یعنی انصاف قضیه ما با یک مشکلی برکن مثلا راجع به بخش اول قرانه قرآنه فرض که مثلا الله بینگن مطلقه نه النبیان به قرار مقیده گفتن کل وی خب این مقتضی اولا برای اینکه اهل اللوارده مطلق باشه اگر ما گفتیم در آیاتی کتابی مطلق نداریم مثلا بعد با سالای رو اینجوری بوقوعه این که مثلا فرض میگن اقیم الصلاه مطلق پیغمبر فرمود نواصب دو تا 2 4 سال حسن 4 سال این مبعید و که اصلا اقیم الصلاه مطلق هست یا نه اصلا اقیم الصلاه مطلق یا مطلق نیست دقیقا ما یک مشکلی داریم اصولا مثلا در دنیای امروز قانون اساسی و مطلق نمیدونن در حقیقت در م مقام احمال به اصطلاحاتاصول در اصل تشروییق میدونن و خب اگه نازش شد به اصل تشرویید یک جمع معلم من نداریره که این در اصل تشروی خصوصیات رو پیغمبر با س نداقاشون برم فهم ده. این یک مطلب. باز هم مطلب به اینجا ختون می شما ما در مقابل تمامین ها موضعگیری بکنیم بعد بار فرق بشیم مطلب دوم که از این به یک معنای مهمتره این الله و با نهن نبیان بیلغرر چه نسبتی با هم دارن؟ حالا فرمسیم مطلق و مقید این نکته تغییر در اینجا چیه؟ چون ظاهرش اینه که تقیید سنت کرده آیه کتاب اطلاق داره سنت تقیید داده مقیده نکته اینه که حقیقت سنت چیه؟ ما باید اول اینم روشن بکنه گفته شده حقیقت سنت عبارت از مطلبی است در کتاب، اما ما نمیفهمیم. پیغمبر میگه. پس اگر اینطور شد نه نبی یا انبیه الغرر، این در حقیقت یک آیه دیگریه، اما ما نمیفهمیم از کدام آیه هست. پیغمبر میگه نه نبی یا انبیه الغرر، یعنی پیغمبر از خود قرآن استفاده کردن که اهل الله مطلق نیست بلکه موعیه. اگر کسی این تصویر داشته باشه بالین هم دومطلق و مغید. این انصافش هم مطلق اما اینکه کسی این تصیره نداشت و اصولا مقام جعل رو برای رسول الله میدونه تفسیر دوم از سنت تفسیر دوم اینه که پیغمبر جعل کرده اولا خداوند متعال به نحوه قانون اساسی نه به نحوه مطلق اون رو جعل کردن پیغمبر اکرم صبا مصالحی که خداوند برای ایشون نشونه طبق آیات کتاب چندو مصالح خاصه برای اینکه بر حق تشریع قرارن پیغمبر در حق تشریع خودشون فرمودن که مثلا نماز صبح دو تا باشه، زور چهار تا باشه، از چهار تا باشه، حالا این در حقیقت یک سنتی بوده از رسول الله رسول الله در جعل میکنه و با جعل خودشون دارن اون جعل الهی رو تکمیل میکنه اینجا هم به یک معنای حمل مطلق بر هست بلکه قوی‌تر به این معنا چون در اینجا حتی میشه گفت جمعه متلق برمقید نیست بلکه تفسیر و تحدید و بیان و توضیح آیات کتابی چون آیات کتابی مثل اطلاق نداره اصل اطلاق آیات کتابی ثابت نشد تا این که بیاد. پس آیات کتابی اهمال اج... دارن یعنی آیات کتابی در اصل تشریح هم پیغمبر اکرم با سنت خودشون اقیم و فر فقط همین که نماز در ایشریعت هست چون گامی اوقات هدف اساسی اینه فرض که مثلا الان شما کتاب کامون رو که می‌خونید فرض کنید در اسانید خیلی هم سره بکنید اما از مجموعه کامونیزات این می‌ونه که اصل زیارت قبور در فکر اهل هست اصل مطلب همشان که الان زیارت قبور در فکر ها شرط حساب میشه حالا یک وهابی چی گفته که چی گفته اون, اون ممکنه بعضی یکم اختلاف داشته باشن توندو کندر باشه اما در اصل تفکر این هست و این رو پیغمبر اکرم میخواستن اثبات بفرماند که دین مقدس اسلام مثل عیان سابقه دو تا رفن اساسی داده یکی نماز، یکی هم زکات سلاز زکات هم که لذا مغرب و عقی مصطلات و, و آتو زکات در رضا الله هرزان این اصل شریعته یعنی عقی مصطلات اینه اون وقت این خصوصیات لقدش کهی باشه عردش کهی باشه خلصتش چی باشه چی دو توش کنده بشه توی قیامش چی باشه توی رکوعش چی باشه خودمونی که به خداونده متعال از نماز قرار دادن یکیش توهوره یکیش رکوع سجوده اِنَّ ثلاث سلات، اِنَّ ثلاثه سلاست اجزا جز اون رکوع و جز اون سجوده جز اون اما این هم حقیقت نماز اینه اما این تکبیرات الاحرام رو اینجور بگین بسم الله بگی، میگم سوره حمد بخونید بعد یک سوره دیگه کامل بخونید بعد به این تاکید در حقوق بدید بعد دیگه... تمام اینها از سنن پیامبره تماما و بحث مطلق و مقیداً در اینجا دقت بکنید مکره نیست دیگه بحث اسم اصلا مسلمانین ای رو این مقدار گفت که در این شریعت مقدسه نماز و, و روزه روزه هم در آیات مکیه مورد تاکید قرار نگرفت در آیات مدنیه روزه یک بار مثلا روزه در قرآن خیلی مورد تاکید قرار نگرفت یک جا آمده یک جا مثلا گفتن استغفر و صابر و استغفر گفتن صبر مراد روزه تفسیر شده و از اینو به صبر و استقامت تفسیر شده به روزه <تصف> می دونم. اما نسبت به زکات اینقدر تاکید غیر از اون 3 4 که در باری مون و همین سوال مینا سوالاتش تو ذهنم نیست مثلا در مورد نصاب اسحان یوم دل یوم مسلمان، کنند مؤمنات قانات به اصطلاح سایهات، ها طیبات و اکرات تو شائمات نداره نه چرا که صالحات به تفسیر صالحات اینا یکی از این از این مواسیع نوشته که این نشیمن از که جهان گری برای زنان او به واسطه سیاحت شد. ساره. او اها دو سفر است. علایانه مراد سفر حج ساره. علایانه صائمات حالا تکلیفش میشه الا ساره ها تکلیفش میشه سفر است. و کیف ما خان سفرهایی که در ساعت هست شروجیی از در ساعت. علایانه دقیق بفرمایید من وارد این خودسا دیگه نمیخوام خیلی بشم پس ما یک مشکلی داریم وقتی این مشکل در شیعه به خاطر آمدن بیان متأخر طبیعتاً بیشتر میشه این به اصطلاح مورد نسبت به ما بیشتر میشه اونجا هم بحثی بود که سابقا مطرح کردیم که دیگه تکرار نمیشه اما اگر بخوایم با قطع نظر از اختلاف تعبیر، اختلاف متون، اختلاف مستر تشریف، تارتن کتاب هست، تارتن سنت هست تارتن روایات متأخره از اهلوکر با قطع نظر از اینها که اینو بیشتر جنبه ماده لحظ تشریف میدن اینا تاثیرشون به عنوان ماده بحث اما اگر با خیلی روی بحث های سوری و قالبی بحث بکنیم صورت بحث انصاف رضیه همد مطلق بر مقایدیه امرو ارفیز جای بحث نداره تکیه شرط اساسیش این است که باید مبعث به عنوان شارح و ناظر به مطلق باشه یعنی باید یک نوع قرارداد قانونی بینشون برقرار باشه این چیه که در باب ذهار باشه که در باب قهر باشه این کافی نیست یکی در باب وضوو باشه که در باب قسط باشه اینها کافی نیست یکی در باب خلوت در ناب یکی در باب اصل هفت عمله قرار نقطه فنی و اساسی حمل مطلق و مبعث با قطع نظر از این ماده های معیلی که ما در شریعت داریم به لحاظ صورت به لحاظ شک به لحاظ خاله باید و دو دلیلی در اختیار ما باشه که همون مورد مثلا انزاهرت فرطق رغبه انزاهرت فرطق رغبتن مومنه اینجور این سن حالا یا ما اینو داریم در شریعت یا نداریم بحث دیگری یک روایت آمده با دو تا سنت یک متنش یک روی در یک متنش یک روی دیگه یک یک که در نتیجه دو تا معنی ها ازش میشه فهمید مثلا یه روایتی ما در همین عباب به اوقات نماز صحابه و ساله ورده قدسالله روایت وارده هست با که دو تا معنی داره یه متنش اینه که اگر به اصطلاح نافله خون این در حقیقت حرف کرده بین دون ما تفصیل بین دو نماز مستند برای ظهر در وقت ظهر می‌خوندن اکثر از وقت عصر امام میخوان اگه ظهر خون بعد نافله عصر خون بعد عصر خون این مقدار کافیه برای فرض این مقدار کافیه برای هیچ چیز در این ربایت مخواهد دیگه شما اگر نافل و همین مقدار کافیست برای ایجاد فصل ببینید شما یه لفت شما اینو میگید ما دنبال فصلیم اگر میخوایید فصل حاصل بشه میخوایید شما فصل دست بیارید میشین ظهر وقت زهر بخونیم عصر وقت اصل میشین کار گیه او که نماز زهر در وقتش بخونیم با نافلش بعد نافل اصل بخونیم برای اصل ولی الان عصر اصل به اصطلا در وقت زهر کمد بسید وقتی نافله آمد این فصل درست میکنه این یک معنا. یه معناه دیگه باز به عکس این ممکنه این روایت کسید دوتا معنا. یعنی دو معنا آمده یه مطلیش اینه که اگر شما نافله خوندین با نافله خوندن ترس حاصل میشه فاصله شد به این نماز ولی از مثلا فتفاد روزن که اگر نماز زور خون بعد بلا فاصله نمازه از خون با که فاصله زیر زن شد در نماز نافله است اون بعد از نماز عصر بخونه فرضoden که او اذان رو تکرار بکنه چون تکرار ازان در وقتی که نماز دوم در وقت نماز اول بخونه عصر رو در وقت ظهر ازان نمی کنه اما اگر عصر رو وقت کن اون وقت اذان رو تکرار کرده در اینجا دقت کنیم دو جور معنا میشه یک جور معنا شما با نافله خوندن سواب فطر می گیریدون شما با نافر و خوندن انجام دادید ازام رو تکرار بکنید خیلی هم نزدیک به هم این ذرافت معنا گانی بر اثر اختلاف نقل این موجی به حمل مطلق و مقاید جای از اینجای حمل مطلق و مقاید اختلاف نقل ما باید در درجه اول سریع بکنیم اثبات بکنیم محطم چیست اون محطم ثابت شد بشه بعد از ثبوت اون محطم وارد بخص مطلق و م خلاصه مطلب اینه که اگر ما باشیم و مختزای قبائد عامه به لحاظ شکل و غالب یک باید این دو ماده قانونی ناظر به هم باشن اگر یکی در یک باب باشه، یکی در باب دیگه این اصلا قابل همه مختلف و بود دو ما باید از خارج ولو به و ولو به قوانین آمه احراز بکنیم که مطلوب یکیه اگر احراز نکردین مطلق یکی هیچ نکته ای برای حمله متلبر موعد نیست چرا اصلا خوب دقت بکنید مشکل حمله متلبر موعد اینه چون دو تا است مثلا نماز شب هم امکان نداره نماز شب 11 است چون دو تا است ممکن است یا فقط مثلا اعتق رقبه است اعتق رقبه تو مؤمنه اینجا چون دو ثانیه و دو سه دور میشه بینشون جمع کرد یکی هم له متظر معیّن میشه انجام داد یکی از میشه اخذ به مطلق بکنیم موعد هم به ابزار احراز بگیره خب اینا میون کار داره دیگه عسر قرغره تا هر رقبه را آزاد کنه یعنی عسر قرغره به مؤمن موانه افزاله مسلم برده اگر مسلمان باشه مستحب به باشه ببینید ما مشکلمون اینه که دو تا با هم دیگه تنافی دارن به عسر قرغره جمع تنافی در هر دو صورت ممکنه و این که چیزی در اینجا خوندم از بحث اصولیای قبلی یعنی از اصول ها که اینجا عرف جمع حمل مطلق بر مقید میکنه دقت بکنید ما از کتاب این بهرمونی هم فوندیم که اینجا بحث در مسائل لفظی است در جمع لفظی دقت بکنید, بکنید. مثلا ما بحث اون در حقیقت در یک بحث لفظی صرف نیست در عرف آم هم نیست اصلا بحث در اینجا ولو لحظی است، اما در عرف خاص و مراد از عرف خاص یعنی عرف قانونی پس ما خود بحث مطلب و بحث از قالب ها و شکل هایی بلحاظ نکات لحظی در محور قانون نه عرف عام آن و انصافت در محور قانونی هم همده مطلق برمقید ممکنه و هم ممکنه است مقید و هم بر افضال افراد بکنیم هر دو به ای مشکل خاصی ایجاد نمی در فهم قانونی ولذا انصاف قضیه اگر بخواییم یک ذابطه علمی در این جهت بدیم باید این جور باشه در قرف قانونی اگر مطلق و مقید جوری باشن که نازره به هم باشه یک دو مطلوب هم یکی باشه وحدت مطلوب که غالبا در واجبات وحدت مطلوبه اصلا در واجبات دائما نه غالبا در مستحبات اثبات وحدت نشده نشود بنابراین اینطور قابل میشیم. میگیم اگر دو دلیل داشتن ولی اون نقطه توی قانونی بود اون وقت ملاحظه بریم دلیل اگر در واجبات بود و ناظر به هم بودن حمل مطلب بر مجیذ میشکن اما اگر در مستحبات بود نه بصرا گفت نماز شب بخون از اون گفت نماز شب 11 رکعت بخون این دومی دو تعقیب نمیزنه یعنی چه تعذ متوق یعنی اگه دو رکعتم خون امر نماز شب احتیان کرده 11 رو کردم خون انو اون دومی دو مراد از حمل مطلق بر یعنی دوتا دو تا امر مندرج میشن یکی میشن مراد از عدم حمل مطلق بر یعنی مطلق به حال خودشه مقید به حال خودشه امتصال عهدهما لا یکضی امتصال دیگری رو یعنی اگر یازده رکعت نماز خون امر یازده رکعت ساقط میشه اما اون که میگه نماز شب بخون باز به حال اطلاقش محفوظه اینطور طور نیست البته اطلاقش محفوظه اما مقام امتصالش حاصل میشه قهرند به خاطر اینکه بالغ نماز شب بخونده. اما اگر نمازشب شب که رکعت خون این امر ساقط میشه نماز شب بخون امر نماز شب 11 رکعت ساقط نمیشه اینطور نیست که دیگه نماز شب با عنوانه خودش امر نداره پس مراد از تعذید مفعول دقت کنید مراد از تعذید مفعول یعنی هر کدوم از امر مطلق و مقید مفعول به نفسه که اگر یکی رو انجام داد اینطور نیست که دلیل دیگری ثابت بشه مگر اگر مقید انجام داد دلیل مطلق ثابت میشه و الله مطلق انجام داد دلیل مقید با حال خودشه در خط نماز خون میگه من امر عقل سادات الله لی انجام راست اما سل سلاسل دیل اهداعش در بکه امر انجام نداده این هم امر حالا خودش محفوظه پس بنابراین البته ما به لحاظ قانونی لسان دو دلیل رو هم باید نگاه بکنیم قیرت اینجا مثلا یک جا لسانش لسان وضعه لسان وضع به طبیعت الهاد خیلی جاها مقدم میشه بر مسئله لسان تکلیف ولی زا حتی ما در مستحبات هم توضیح دادیم اگر در مستحبات لسان رسان ورز شد معلوم نیست اونجا حمل مطلق بر موعد نکنیم تعارض مطلق معلوم نیست مثلا در روایت در القنوت فسلات كلها در رکعت ثانی الا الوتر فانهو فسالسه خب اول هر مطلق بر نکردن گفتن که طبق اطلاقی که داره در نماز وتر که سرکته شب و وتر هم مستحب در حرکت دوم و هم در سوم حرکت دوم به اطلاق که در سرکت ثانیه قنون دایدست مستحب سالسیش هم به خاطر همین رو ما به نظر ما مشکل داریم. این جمع کردن که آرکوی هم جمع کردن به نظر ما مشکل داره سردش هم اینه که ظاهر عبارت حکم است نه تکلیفی داره جای قنون تو در نمازشون نشون میده در نماز ها در درکت دومه در نماز شهر و بیرد سوم. اگر لسان لسان حکم باشه اینجا هم به بر برمغییت میشه و جای مسئله به اسطلاح تعرض مطلوب نیست پس خلاصه کنیم بحث رو یه مقدار بحثایی که ما داریم الان در فقه ما چون اصول بحث جنبه یا عالی داره نصدفه یک مقدارش اولا اونا معلوم نیست که موردی باشه یا کلی باشه سانیه یک مقدار زیادی از امثله ای که اهل سنت تو این بحث آردن اصلا رفتی این مطلب نداره اونا به زنیمه قیاس آردن سالسن توی این مسئله به دهازه شکل و غالب یک مقدار زیادی بحث تو مواد اصلن. مثلا برخورد ما با کتاب چطور باشه برخورد ما با سنت چطور باشه برکورد ما با روایات اهل بک چطور باشه حق تشریع دارن حقیقت پس یک مقدار رو یک مقدار هم روی قالب ها و شکله روی قالب ها و شکل خیلی زیاد نیست بیشتر روی ماده محصره اگر روی قالب ها حساب کردیم البته این هست یک دو دلیل باید به هم ناظر باشن دو نباید باید احراز وحض مطلوب بشه که غالبا در واجبات وحض مطلوب در مصابات اگر احراز وحض مطلوب شد و دو دلیل ناظر به هم شد حمل مطلب برمهیت میشه و الا دیگه دلیل خیلی واضحی در این جهت نداریم. سالال